به نام خدا صحبت این جلسه ما درباره فلسفه و یا حکمت بیماری‌های بشر و مسئله درمان های این بیماری هاست از یک لحاظ میشه گفت که انسان به عنوان یک جاندار یک حیوان حیوانیست بیمار یعنی در واقع انسان تنها موجود بیمار در جهان هستی هست یعنی حیوانات هرگز بیمار نمیشن بیماری اونها هم هنگام کهولتشونه که نشان از مرگشونه به طور طبیعی زندگی میکنن به طور طبیعی میمیرن الا اون حیواناتی که در حریم زندگی انسان ها هستند در رابطه با انسان بله بیماری های خاصی خواستی که این روز شاهرش هستیم حتی آمگزانزای مرغی جنون گاوی نه همه در واقع حاصل رابطهش با انسان. در واقع حیوان هایی که اهلی هستند تحت تربیت انسان ها هستند در واقع می شود اونها هم بیماری های انسان رو به نوعی دیگر می‌گیرند. خب بلا چرا انسان حیوان بیماریه؟ انسان جسمن و روحن بیماره رنجوره ناراحته به بیان دیگر انسان حیوانی است ناراحت قصد داریم در محل اول دلایل وجودیه این مسئله رو در انسان بررسی کنیم و در محل دوم به مسئله درمانها و شفا بپردازیم از این لحاظ بایستی گفت که آلام هستی جهان طبیعت و کائنات جهان برزخه این رو حکیمان جهان و مخصوصاً حکمت اسلامی به اینام اشاره کرده که جهان طبیعت جهان برزخه برزخ یعنی یک وضعیت بینابینی وضعی بین مرگ و زندگی وضعی بین بود و نبود چرا چراچنینه برای اینکه جهان هستی قلم رو به تغییر و کون و فساد. هر چیزی که الان هست یک زمانی نبوده و باز یک زمانی هم نخواهد بود پس هیچ ثباتی در این جهان نیست عالم هستی هستی این جهان طبیعت هستی نیست یک وضعیتی بین هستی و نیستیست در حقیقت در حقیقت باستی گفتش که هستی نمایی میکنه این جهان برای همینه که از قدیم برخی از ورفا و حکیمان بزرگ در جهان مثل فرس فلوتین اعتقاد داشت که این عالم ماده این کائنات صورت عدم هست این عدمی که به صورت و تعیون در آمده جهان ماده همان عدمی الان این مباحث مباعث بسیار اساسی وجودشناسی و فلسفه و حکمت به این جنبه فلان. در این صحبت نمیخوام خواهم بفردازی و اما انسان به عنوان یکی از این موجودات ای عالم هستی که اون نیز دارای یک وضعیت برزخی هست با مابقی جانداران و موجودات یک توابط ماهیتی و ذاتی داره و آن اینه که دارای خود آگاهی هست انسان تنها که می که هست از ایلا می گفت وی دیگر انسان از سایر حیوانات نه که انسان حیوانیست است که میداند که هست در واقع یعنی میداند که یک روزی نبوده است و نیز میداند که روزی هم نخواهد بود یعنی خواهد مرد او این آگاهی و معرفت را سایر حیوانات نداره خب باز در واقع انسان تنها موجودیست است که بر وضعیت خودش آگاهی داره یعنی بارزخی بودن خودش رو درک میکنه و میفهمه که بارزخی است این وضعیت بینابینی اینره. خب طبیعی این خودآگاهی غریی و طبیعی در انسان و بین این خداگاهی خداگاهی طبیعی وجود انسانه این از اون ن خداگاهی عرفانی و معرفتی این نیست. داده. این هم ذاتیه خب، پس طبیعیه که این خداگاهی انسان دربار هستی خودش این وضعیت بینابینی آگاه بودن مرگ خودش خب چه چی چیزی در انسان لازم روانی بدید میاره ترس، هراس، بین وحشت وحشت از مرگ و نابودی استراب برای هم همین از انسان پیوانیست مسترب خب همین ابر باعث، و از انسان که بهش میگن بیماری خود لغت بیماری که لغت فارسی هست خودش بیان همین وضعیته بیماری یعنی بیماوری بیمار یعنی کسی که مختلا به شده در حراس افتاده این حراس و خداگاهی در اون چنان شدیف شده که او را رنجور کرده پس بیماری ها حاصله وحشت انسان از استیست. انسان به میزانی که بر مرگ نیستی آگاه میشند و آگاه تر میشند در واقع بر حراسشون افسودتر میشه ولذا بیمار میشند بیمار یعنی بیماور خب یعنی به میزانی که انسان احساس امنیت و ثبات و جاودانگی رو از دست میده دوچار بیم و وحشت میشه و به انواع بیماری ها میشه خب بزن نقطه مقابل وضعیتی که اسم بیماری هست چی قرار داره؟ احساس امنیت و جابدانگی به بیان دیگر ایمان ایمان ایمانی به چی خب؟ ما میدونیم ایمان به خدا ایمان به حیات بعد از مرگ، ایمان به جابدانگی خب وقتی چنین ایمان و باوری باشه طبیعتاً آن بیم و بیماوری و وحشت خب به همون دریجه ایمان خب کاهش بدان میکنه پس خب ما میبینیم تا همینجا واضح دیدیم که ایمان قلم به سلامت انسانه انسان به میزان ایمانش وحشت زده نمیشه به هراس نمیفته خب ما از یه لازم میدونیم که در جدید در پیزشکی مدر تقریبا همه بیماری ها در قلم رو به تشخیص به مرحله که به اونها میگن امراض اوتو ایمیون سابقا یه چند تا بیماری بودند که معروف به اوتو ایمیون بودند مثل بیماری های جنتیکی بست کن بیماری های وراستی بست اوتو ایمیون بودند ولی اخیران حتی سرماخوردگی ها و اونکولانزاه هم نهایتا تشخیص دادن که اونها اوتو ایمیون هستند اوتو ایمیون از یک لاز یعنی مترادفه با بیماری های لاعلاجه وقتی اینکه چرا حتی اپسادایترین بیماری ها هم اوتو ایمون تشخیص داده می خودش یک داستانی است عبرتنگیز و قابل تعمل از لازه خود ایمون لغت لاتینه و از امنیت میاد. خب ایمان هم کلیمه عربی و عبری خب اینها ها در ویشه شناسی یک منشای واحد دارند. خب امراض اوتو امیون طبق تعریف فیلم فزشکی یعنی امراضی هستن که آن بیمار در شرایطی قرار میگره که کل وجود خودش صورت یک دشمن قسم خورده بر علیه صاحبش عمل میکنه این تحریف فیلم فزشکیه آه؟ یعنی وجود انسان ضد خودش میشه به جون خودش میفته که میخواد اونو نابود کنه ببین اینا بیماری های لاعلاج این چکلی انواع آسم ها گرفته میگن لاعلاج ها سرطان ها نمیده. خب طبیعی که در خود الیپیدیشکی در باری حمراز الله و اتومیون وجود داره ما رو در واقع در مفهوم کفر میرسونه ببین ما در قران می که کافران ها اصلا خسن خیشلانند کافران خب ما در می که جاهلان عمغان ها و اینا به گمان خودشون با دین و ایمان و با خدا و با مومنان در جنگ می جرن ولی در واقع دارن به خودشون ظلم میکنن ها انگار خودشون افتادن خب ببینید ای همون تعریف امراض لا و عطوی میون ها پس در واقع ما میبینیم که امراض لا و عطوی میون در واقع همه اینو حاصل کفر انسانه کافر کسی که خود دشمن سعادت و جاودانگی خودشه دشمن عزت و سلامت خودشه ها. کافر کسی که آدم غیب رو حیات رو قبول نداره دیگه پس در واقع نابودی پرسته ها در واقع نابودی رو تصدیق میکنه وقتی جاودانه و خدا رو و حیات بعد انسان رو قبول نداره پس چه اتفاقی می افته در این او؟ کفرش برو آه، به دام نابودی میندازه درسته؟ نابودی هراس آور بیمآور و لضا او بیمار میشه به عصبی روحی روانی جسمی هموا اقسام بیماری ها سابش خب از این بس گفتش که بیماری ها حاصل ابتلای انسان به نابودی است که حاصل کفر انسانه در برای همین مثلا اسلام ما میگیم یعنی سلامتی این که این حدیث وجود داره که پیامبر اسلام بزرگترین طبیب تاریخ بشر هست و دین او تنها راه سلامتی هست خب راه دین راه ایمان راه پرستش جاویدانو و جاویدانگی هست جنی خب وقتی انسان چنین وضعیتی داره در این جهان این وضعیت بینابینی و برزخی رو وقتی داره خب طبیعتاً بایستی خودش رو به سمت هستی بکشه هستی خداست هستی مطلق و جاودانه خداست پس در واقع خداگرایی که در عمل همان دینگرایی هست عمل دینی در زندگی هست ها انسان را از قدم روی بیرون میکشه و به سمت سلامتی میباده خب ما میدونیم که سلام از اسمای خداست در واقع سالم مطلق خود خداست ما داری یک حدیثی داریم حدیث که خداوند میفرماد که سالم فقط منم و این فرزند آدم شما همتون بیماری پس به من روی آورید تا سالم شدید و به سلامتی برسی. خب عمل دینی ما میدونیم چیه؟ عمل دینی ما بارها گفتیم نماز و روزه و خیرات اینا عباداته زندگی دینی بارها گفتیم آنچه که شریعت انبیایی لایزی هست ما گفتیم یعنی صداقت پاک دامنی وفا حیا تقوا اینه که در زندگی عملی بکار آدنیم حلال خوری دوری از محرمه خب این. این نوع زندگی کردن که همون زندگی دینی هست در واقع یواش واش به انسان ایمان میده ایمان رو در دل تقویت میکنه یعنی قدرت ایمنی و ایمنیولوژی رو بالا میبره در مقابل بیماری ها خب، یکی از ایمون ترین و علا ترین بیماری ها چیه که میره که نست بشر رو برندازه ایز ما میدونیم این بیماری ایز در نخستین قلمروهایی که پیدا شد کجا بود؟ نه در اماکن فساد در جامعه معتادان ایاشان خواهش خونه ها و در جوامع همجسگرایان پیدا شد. الان هم این نو افراد و گروه ها بیشترین درجه از این بیماری رو دارن و بیشترین مفتالانی به این بیماری در این قلم رو هستند ببین در قلم رو به حیات غیردینی و ضدی دینی در اونجا پیدا شد. خب بعض از انسانی که در این وردیت برزدخی و بینابینی را رزندگی میکنه بین بودن و, بودن و بودن و مرگوزن دیگی خب با باسید زندگی دینی خودشون را نزدیک میکنه به خدا و قلبش رو به ایمان میرسونه و از این طریق در واقع مشکل این ایمان از ست هزار واکسن بختر و اساسی تر پیشگیری میکنه در واقع باس گفت به داشته حقیقی همان ایمانه پیشگیری از بیماری اما اما خود بیماری وقتی پیدا شد بله کنم پیش اون درمان داره خب درمانش چیه؟ توبه از گناهان و روی کرده به دین پس پیشگیری در قلم روی معرفی دینی پیشگیری جز ایمان نیست ایمان از بیماری های و سبولالاچ پیشگیری میکنه اما انسان باز به واسطه تمهش به گناه مبتلا شد و بیماری سراغش آمد ایمانش از دست داد و بیماری آمدن سراغش در حقیقت اون موقع بازم علاج داره درمان چی از لازم عرفه دینی؟ توبه از گناهان و روی کرده به دین روی کرده به دین منظور نماز خوندن نیستی این یاده اون نه نماز جز عباداته که به طور طبیعی از وجود مؤمن برمیاد این عبادات مرورد مؤمنانی در قرآن یعنی کسی که بلا فاصله بخواهد توب بکنه نماز بخونه این کار کاریست غلط. یک ریاست و هیچ هم توش نداره. نماز از مومن در میاد و ایمان یعنی دینی که قلبی شده. همه ما مسلمانیم ولی لزوما مومن ممکن نباشیم. اگران مومن نیست یک دین ارس یا یک دین ریاییست یا ادعاییست در حد شعاره ولی قلبی نیست. خب باز از این با بترین فهمیم چرا قرآن کتاب شفاست و پیامبران ها نخستین و بزرگترین اتبای حضوری بودن از این منظر بهتر میشه ببینید اینها واهی و ادعاهای گذافه نیست هر کسی اگر اندک خداگاهی و معرفتی درباره خودش و زندگی خودش داشته باشه این قوانین رو تایید میکنه کنه در خودش می بینه که اینها راسته ببینید کلامی در قرآن داریم که آنگاه که خداوند بر فرقی یا قومی عذاب خودش رو واسطه افراد در ظلم و گناهان فرود میاره هر کسی می که این عذابی که می گشه از بابت چه گناهانی است. این کسی خواهد دانستن. خداوند در واقع در وجدان او حالیش می که این ازاق بابت کدوم گناهی توهی ببینیم زرده انسان خداگاهی و خودشناسی داشته باشه این رو کاملا میبینه هرچند که ما امروز شاهدیم با افراد و گروه که واقعا حداقل معرفت و خداگاهی هم نسبت خود از دست دادن و واقعا دیگه دیوانه شدن و نسبت به خودشون کور و کر و احمق شدن دیگه دیگه هیچی متوجه نیستن و در عذاب قررن و حتی دیگه شعور خودشون رو هم از دست دادن خود من در تجربه کوتاه درمانگری خودم به عنوان یک طبیب که از طریق حکمت اسلامی و معرفت نفس و عرفان بیماران رو درمان می و تخصص من هم درمان امراض اوتو و امراض لا علاج بود که موفق به درمانی بسیاری از این مرراض لاعلاج شدم بدون استفاده از دارو و رویشهای راج پزشکی شاهد بودم و بسیاری نیز در جریان هستند و می‌دانند که بسیاری از درمان ها یهبد انجام دادم فقط به واسطه دادن معرفت و شناخت و خداگاهی به این بیماران بود که اونها رو متوجه می‌کردم که بیماریشون از کجا پیدا شده و حاصله چرا حرابش غلط و گناهی بوده در زندگیشون آنهایی که بیدار می و تصدیق می و توبه می به طرز این موجز آسا به آن قده سرطانی آن بیماری آسم لاعلاج و انواع افتام بیماری های روانی دیگه از اینها برداشته می و به ناگا موجز آسا شفا بیدا می کردن. از این موردها ما زیاد تجربه کردیم و بعد همچنین می که بسیاری از این بیماران که با یک بیداری و توبهی فقط قلبی تصدیق می شفا بدا می‌کردند. و بعد ما آنها دعوت می‌کردیم که خب حالا روی کنید به دین به اخلاق به خطرت و وجدان خودتون و زندگی سالم تری داشته باشید خب که این کار رو می‌کردند واقعا سلامتی همیشه که به دست می آوردن و سرنوشت و زندگیشون عوض می شود. برخی به خاطر عذاب آتر از این بیماری ها مدت این کارو میکردن بعد که درمان میشدن کاملا مطمئن میشدن دو مرتبه متاسفانه برمیگشتن به همون زندگی غلط و گناکارانه خودشون و بعد از مدتی چند سال به ناگام رو میشنیدیم که آن بیماری یا یک بیماری بسیار بدتاری در اینها به صورت یک عذاب پیدا شد اینها به عنوان تجربه من عرض کردن ببینید انواع بیماری ها بیماری های که کاهنده تن و جان و روح و روان و وجدان و شور هستن انواع هستند انواع عذاب عزابها هستند. انواع عذاب ها هستن کفر انسان در همین دنیا بله همین عذاب در جهانی پس از مرگ هزاران برابر شدیدتر و بدتر وجود داره ولی شمعی نمونه و شباهی از این دوزخ کافران در همین دنیا هم برای کافران به صورت انواع عذاب‌ها که به صورت انواع بیماری ها نشون میده ما شاهدش هستیم ببین ما در قرآن داریم که دوزخ دوزخ آشکار شد ها ببین این واقعیت بسیاری از عذاب‌های دوزخ که در قرآن داریم هم ما می‌بینیم به صورت انواع بیماری های جسمی و روحی و روانی و عاطفی آشکار شده مثلا عذاب علیم یعنی عذابی که درد میاره خب انواع بیماری هایی که درد دارند که در جریان پزشکی ها، شیمی درمانی ها و جراحی ها این درد ها و درد کشی و زرد کشی به اوج خودش میرسه. یا عذاب عقیم در قرآن داریم که به صورت انواع نازایی ها عظیم شدگی های فکری، پوچی ها، اقیم شدگی های عاطفی و قلبی عقیم شدگی های فرهنگی پوچ شدگی های فکری و اعتوادی اینا انواع دیگری از عذابه عذاب سعیر یعنی عذابه که به التهاب میاره مثل آتشی روح رو میگدازه که به صورت انواع بیقراری ها پیدا میکنه ما می‌بینیم که بیقراری یکی از بیماری عصر ماست هیچ کس آرام و نداره برای همین همه در جستی و داروهای آرام بخش و روانگردان هستن که این داروهای چهار سبایی ظاهرا تسکیل میده و بعد این بیماری دوست چندان شدیدتر خودشانشون میده چندین نوع عذاب دیگه در هست ما فقط چندان مثال زدیم ببینید از یک لاز یک مسئله دیگری بجود داره که همه تر می کنن. ما بیماری هم داریم که بیماری های کافرانه نیست در واقع عذاب نیستن بلکه این بیماری ها نعمات هستن ما مثلا میبینیم بینیم برخی ها دارند که این بیماری ها واقعا مخل زندگیشون نیست هیچ عذابی هم نیست اگر دستی به این بیماری نزنند و نهران رجوع نکنند به انواع درمان های پزشکی کاذب این بیماری در این هست و در واقع نوعی آرام و قرار در اینها ایجاد میکنه این بیماری از این بیماری ها رو کم ما نداریم. این بیماری ها در واقع نوعی میششه گفت بلای خداوند بلا به مفهوم بدی ابتلا امتحان برخی از ها عذاب نیست ببینید برخی از بیماری‌ها اصلا واقعاً انسان رو به تشنج میندازن، ذهن رو از زندگی ساقط میکنن، اون رو هلاک میکنن. اون رو جسمن و روحن، لاز اقتصادی و اجتماعی و شکسته و تباه میکنن. عقل و وجدانش رو سادته میکنن. خب اینا عذابه. و خب ما میدونیم بسیاری از ادم بیا و اودیا بیماری‌های ویژه‌ای داشتن که آنها بر بیماری‌های خودشون راضیم بوده. هرگز با درمانی بیماری نبودن خب ما حتی در حکیمان قدیم در آثار رسانی مثل بوالی جالینوس مثلا بقرات ما میبینیم که اونها از بیماری‌های صحبت میکنن به نام بیماری های مقدس اینا از جنس بیماری مقدس هستند ببینید مریض ما یک بار در کتاب اشاره کردیم که از لغت رضا هست در عربی مریض کسی که به رضای خدا مبتلا شده راضی میشه ما میبینیم که خیلی از بیماران هستن که واقعا خوشبختن چرا راضی هستند اصلا از بیماریشون هم چندان شکایتی هرچند که انبیاء و اولیاء و مؤمنان نیهم هستن که بیماری‌هایی دارن که اینا اصلا این بیماری رو شکر میگویند ما دعاهای امامای ما اصلا در صحیفه سجادیه داریم که امام میفرما که رو به من بیماری بده تا من بتوانم را بهتر بشناسم و بهتر شوق کنم و نفسم رو بتوانم پاک کنم خب ببین این دو بیماری رو داریم این دو دست بیماری رو واستی تحکیل کنم خب ببینید ما گفتین انسان موجودیست برزخی بین بود و نبود و بین مرگ و زندگی به میزانی که با واسته ایمان به منشای هستی و جاودانگی و پروردگار نزدیکتر میشه نو به سلامت میره ولی در این حال تن او و نفس او هنوز اسیر این دنیا و خاک هست و در جهان و جوامع کافرانه داره زندگی می کنه این نگاه های کافرانه روابط کافرانه حال تن او رو و روحلوان او رو دار و بیمار میکنه در واقع چه بسیاری از مؤمنین انبیا و مخلصین از قایت اخلاص و از کمال یقینشون تا حیات دنیا به بیماری میفتند دیگه نمیتونن این حیات خاکی رو تحمل کنن برایشون سخت میشه این در واقع میشه که باطنشون قلبشون روحشون اتصال به فروردگار و به جا به پیدا میکنه ولی این حیات خاکی که ما گفتیم ظرف نابودی انسانه چرا برای این تن میره که نابود شه اصلا تن انسان ظرف عدم و تباهیه و مرگ و نابودیه به میزان دیگه روح به تن انسان از یک لحظه به نوعی رنج و تنگنا میفته. احساس میکنه زندانی شده. همونطور که در حدیث داریم که دنیا برای مؤمنان زندان است، حبس است. یک دسته بیماری داریم که مخصوص مؤمنان و مخلصینه که اینان بیماری های خود را دوست میدارند و هرگز اون بیماری رو تردولن نمیکنن، پزشک نمیرن، دوا نمiخورن چه باسا. این بیماری استقاضهنده روح اونها و پاک کننده نفس اونهاست و اونها رو روز برود به خدا نزدیک مخونه ما میدونیم که بیانبر اسلام یا حضرت علی ما میدونیم که اینها بخش امده از عمرشون بیمار بودند سنگ به چکر میبستن ما این رو میدونیم خود حضرت علی ما میدونیم که خون استفراغ میکرده سالها در چاهایی که میگفتن خون هست نه اینکه ایشون نهره میکیشید چاه خون میشده ما می‌دونیم کسانی مثل حضرت مریم یا حضرت مسیح در تمام عمر دردی داشتن که به صد قلن، به خودشون دل درد خودشون می ما می‌دونیم بسیاری از حکیمان بزرگ مثل بو یک عمر بیمار بود. و او باوخذری بیماریش رو می‌دونه. ببینید باز دو رو بیماری داره. در این حال ما شاهدیم که بسیاری از کافرانی هستند که غرق در فساد و تباهی و ظلمند و می‌بینیم که هرگز هم بیمار نمی‌شن چه باساط. له این دستم هستن. این حال بااصلی فم کرد ما در قران داریم که خداوند فرمااد برخی از کافران رو با حال خودشون میذاره افزالشون بقول ما اون تازه سرشون و میگه برید گمشید در زندگی جان خود برخشید و آنها بعد از مرگ حسابشون دسیزه میشه و بردو زخوارد میشن. ببینید اینم مفهومی است دیگر. اینها کسانی هستن دیگه حتی روشون از دست داددن چون روشون از دست دادن, دادن اینها تن و روح روحلوانشون یکی دست در دنیا شده ببینید دنیا پرستی یعنی نابودی پرستی، نابودی خاری برای این دنیا ظرف نابودی است انسان در عالم خاک مرگ و نیستی تجربه و درف میکنه و به میزانی که مرگ و نیستی رو تجربه و درک میکنه و تصدیق میکنه طالب هستی و حیات جاوید میشه و رو به خدا میکنه ولی اگر رو به خدا نکنه در این دنیا پرستی غرق میشه. و چه بسه ها روحش رو از دست میده و به قول قرآن قلبش میمیره این دیگه تن و روح و روانش مرده است به قول قرآن اینها در حالی که مرده ها را میروند و از نزد خدا روزی میخوند ولی اینها مردگان هست چه بسه های اینها مریض هم نشن این دسته از کافران هم در واقعه است. این بس بسید بسیار وسیع فقط یه ای ما کردیم به این مباحث ببینید انسان گفتیم اسیر بین بود و نبود و مرگ و زندگی است و برای این وضعیت برزخی خودش آگاهی داره از چند که کافران برخی به مرحله از جنون و جهل میرسند که این آگاهی خودشون از دست میدن و حتی دیگه فراموش میکنند که قراره بمیرند انسان از یک لحاظ در این جهان قلم روی نیاز هاست اگر انسان نیازمندترین و حریزترین حیواناته به این دلیل که علاله وجودی و قریدتن بر مرگ و نابودی خودش آگاهی داره این آگاهی بر مرگ نیستی خودش قهدی آفرینه ببینید آدم های و ترسو آه؟ تا چدی مصرف کنندن، بلندن، چقدر شکنبارند انسان به میزانی که کافر هست برای بستلاف های اقامدن بر این پس ترس و نابودی سری می دنیای بیشتری رو تصرف کنه بیشتر بخوره بیشتر داشته باشه و از طریق این داشته های خودش برای لحظاتی احساس هستی و وجود بهش دست بده و مرگ و نابودی خودش رو بتونه فراموش کنه ببینید ببینی در وجود انسان چهار کانون حیات و هستی وجود داره که چهار کانون نیاز او هست یکی ذهنیت اوست یکی دل اوست یکی شکمه و یکی هم زیر شکمه یعنی جنسیتش و قلیزه و شرفتی جنسیت. این چارتا چهار تا کانون ارتباطش با جهانه و درکش از حیات است و چارتا کانون نیاز اونیست هست نیاز زیر شکمی نیاز شکمی نیاز قلبی یعنی آتفی و نیازهای ذهنی که مربوط به دانش و اندانایی آگاهی اینا هم این چهار کانون در این حال منشای چهار نوع بیماری نیز هستند یعنی چهار کانون نیاز و حفظ و تمه انسان هستند انسان به میزانی که بتونه به واسطه معرفت و دینداری خودش این چهار کانون نیاز خودش رو کنترل کنه مهار بزنه در قلم رو تقوی. یعنی تقوا پیش کنه خیشتنداری پیشه کنه از ابتلای به دنیا نجات پیدا میکنه و به دنیا پرستی مبتلا نمیشه ما گفتیم دنیا پرستی یعنی نابودی پرستی ابتلای به نابودی این ابتلای به نابودی و دنیا پرستی که به صورت مصرف پرستی و مصرف زدگی ها و حرص و جاه ها خودشون میده منشای بیماری های انسان هستن خب ببین ما نگفتیم ابتلای انسان به مرگ و نابودی در اون و وحشت ایجاد میکنه و این حراس و وحشت در اون بیماریزه هاست خب. یک سری وحشت های ذهنیست یکی سری وحشت ها و نیاز های است، یک سری نیاز های شکمیست یکی هم شهوت و نیاز زیر شکمی به سوال چار نون نیاز که اگر این ها مهار نشه با واسطه دین و فرد تقواه پیشه نکنه اون رو به چار نون نیاز و ابتدای دنیا فلسطان میکشونه. و انواع بیماری ها رو پدید میره ببینید نیاز ذهنی او که ذهنیت مرکز داناییست و نیز مرکز ایده ها و آرزو و آرمان پرستی ها و جهانخوای و برنامهریزی برای مالکیت و جهانخوای است برای همینه یک دسته بیماری ها واقعا در ذهن بدا میشن به صورت اختلالات روانی اصبیت ها تا نهایتان بیماری های اسکیزوفرنی. اسکیز بیش از حد انسان به دنیا در قلم روی ذهنیت دنیا پرستی ذهنی و اما دنیا پرستی عاطفی داریم که معمولا به صورت عشقها بروی پدا می کنه عشق به عشق به فرزند این جنبه نیاز قلبی که به صورت آتفه هست نیز اگر به واسطه تقوا واقعا ماهار نشه این اشخاب برای انسان فلاکت بار و فلاکتبار بار میشه به بیماری‌های بیماری های خودش نشون میده. ببینید بخش از این از بیماری های عاطفی که تبدیل به بیماری های قلبی و عصبی روانی هم میشن در قلم عشق به همسر و فرزندان پیدا میشه فرد میخواد همسر و فرزندان خودش رو بب مثل کالایی تا در خودش احساس نابودی رو کاهش بده فکر میکنه از طریق بلقیدن و سلطه روحی روانی بر و همسر و فرزندان و افالش میتون خودش از نابودی نزاد بده حالا که چنین نیست، استریک طریق تقوی در قلم روی عاطفی هستش که میتونه خودشون بده. نیازی بعدی گفتیم شکم هست که خب ما میدونیم بخش عظیمی از بیماری های امروز حاصل پرخوریست بشار امروز دنیا رو داره میبله. هر هرچی که گیر میاده داره قرط میده بخش عظیمی از بیماری ها حاصل پرخوری ها و مصرف های افراتی و فضاینده اوست بشر کافر فکر میکنه هرچی بیشتر بخوره احساس وجود میکنه حالا که همین ها او ها به سمت بیماری دنی به سمت نابودی و احساس نابودی میکشونه هرچی بیشتر میخوره به قرآن احساس میکنه که بیشتر داره هر گشتی تلف میشه. نیاز بعدی هم گفتیم نیاز جنسیست شهروانی این همطوره بخش عظیممی از بیماری های بشر امروز حاصل شهود بالگی اوکس افسالگوستختگی هایشهوانی می ناکاری های که این نوع بیماری ها همه می دونیم ولی انسان به میزانی که تقوای شهوانی پیشه میکنه، پاکدامنی پیشه میکنه، از ابتلای به شهوت دنیاوی میتونه سلامتی خوش به دست بیاره انسان ما می دونیم که انسان هایی که شهوتباره هستن و هرز هستند تا چدی جسم و روحشان بیمار هست انسان ها فکر میکنند با تنوعات جنسی با تملکات جنسی میتونند احساس وجود بکنند حالان که در اونجا احساس نابودی در اینها مرتباً افصایش پیدا میکنه به احساس قهدی و عذاب سعیر و بیقراری و آتش رو در اونها خودنمایی میکنه و خود همین منشای چندین بیماری جسمانی هم هست در واقع این چهار کانون نیاز چهار منشأ بیماری انسان میتونه باشه در قدم روی بیدنینی و کفر بنابراین یک بار دیگه مرور میکنیم صحبت رو پس واضح شد که علاجی جز تقوا بهداشت و درمانی جز تقوا و پاکدامنی و قناعت نیست تقوا و پاکدامنی جنسی قناعت شکمی و نیست قناعت آتفی و همچنین قناعت در قبال دنیا پلستی ها مهار دنیا ها و آرزوهای های دنیایی این ها منشای سلامتی هستن به میزانی که انسان در زیاد طلبی های آتفی، ذهنی، شبانی یا شکمی غرق میشه، این غرق در دنیا میشه دنیا هم چیه؟ فقط قحطی و نابودی رو به خورده انسان میده و انسان نابودی زده میشه مرگ زده میشه و به وحشت میفته. تو نگاه کنید بزرگترین ویژگی انسان امروز چیه قهتی زدگی هرس و وله و احساس وحشت و نابودی جهان امروز جهان تروره یعنی جهان حکومت وحشته همه وحشت زدن در و همه احساس میکنن هراموکه نابود بشن این خود همین احساس نابودی خودش بزرگترین اذابه و منشای همه ای این حراس و احساس است یعنی کجا پیدا شده به که در عرصه تکنولوژی و صنعت این همه کاله ها بدید آمده و این همه مصطف ها روز به روز داره بیشتر میشه داره انسان در واقع داره نابودی و مرد رو میبله و مصرف میکنه رضا بر وحشتش بر احساس قهدی زدگی و نابودیش افسون میشه و خود همین منشای انواع و اخزام بیماری های جسمی عاطفی و روحی و روانی هست نبراین میشه نفیجه گرفت که در قلم رو به ذهن که یکی از ارکان وجود و ادراک و دریافت انسان از حیات هست و از همین کانال هم انسان مرگونیستی رو دریافت می کنه ذهن یکی از منابع دریافت مرگونیستی و دریافت بیماری هاست و نفوذ بیماری هاست چگونه؟ به صورت آرزوهای بزرگ دنیاوی جا طلبی ها انسان رو به دنیا پرستی می در این دنیا پرستی مجبور میشه دروغ بگه دوزی کنه خیانت کنه حرام خاری کنه مال مردم بخوره خیانت کنه یعنی از دین خارج بشه کانون دیگر ما بقید تیزها رو می گفتیم دله دل, دل نیست کانون دیگری از ارتباطش با حیاتو هستی و همچنین مرگو است. دل کجاست؟ محل تعلقات عواطفه و نایتاً عشقه اونتا عشق تصرفی عشق ده نوعه یکی به صورت ایسار خود نمایی میکنه که این عشق است که این قلمرو پاکی انسان نسبت به دنیا و دنیا زدایی میشه و لذا به ایمان میرسه همینطور که گذشتن انسان از آرزوها و جاتلبیهای بزرگش در ذهنش نیست باعث تسکیه ذهنش میشه و باعث زدودن ذهن از مرگ و میشه یعنی باعث سلامت میشه لذا در قلبهای دلم انسان به میزانی که به اشخای تصرفی رو میکنه بخواه تمسال و بچه هاش رو بده درست؟ اراده و روح اونها رو ببله و از این طریق به گمان خودش احساسی وجود بکنه نتیجه برعکسه احساس نابودی و قهدی میکنه ولذا از همه این مشروعهاش بالاخره انتقام میگیره این عشقهای تطرفی نیست قدم رو دیگری از بروز انواع بیماری هاستند ها زیبا انسان رو به قهدی و نابودی دو تا دیگه هم یکی گفتیم شکم پرستی یکی هم شهرت است که در این مورد دیگه مثال هر کسی میتونه بنداز خوافی برای خودش مثال پیدا کنه که تا چدی از بیماری های انسان حاصل به شکم پرستیهاشه برای بل بیشتر که احساس وجود کنه. و مرگ و نابودی رو بخواد در خودش بیرون بندازه اتباقا بیشتر به مرگ و نابودی مبتلا میشه حضرت علیه السلام یک سخنی داره که به وضع میشه این رو درک کردن روزه میفرماد که امراض مصری دروخ هستن یعنی این واقعیت نداره که میگن که فلانی یک بیماری رو از دیگران گرفته مثل وباطاب یک حرف بسیار بزرگیست کسی این حرف رو میزنه که خودش بزرگترین طبیب و حکیم تاریخ واقعیت داره بنابراین این که ببینید این روزه ترامان تمام امراض خانمان براندازی که بشریت رو نابود میکنه میگن مستیه دیگه مثل ایبس که دیگه نابود کننده ترینه پس از این دیدگاه غلطه نه خیر کسی که ایمان داشته باشه نمیگیره به کلام کسی ایمان داشته باشه امکان نداره ایز بگیره حتی اگر با ست تا اجزی زندگی کنه امکان نداره حتی به یقین میشه گفت کسی که ایمان داره انسان است حتی اگر خون آلوده به ویروس ایچایوی هم بهش تذیر بشه هم ایز نمیگیره به کلام همچنین است ما بقیه امراض مصری به این حکمت دینیه اگه بگیم فلانی بیچاره بیگناه بی, بی, بی تقصیر ها از دیگران فلان بیماری گرفته و یک عمری کشید و جان کند انسان در عدالت خدا شک نمیکنه؟ ها خداوند عادل بلکه بسیار مهربانه امکان نداره چنین چیزی به تجربه می‌دونیم مثلا در یه خونه یه نفر اون فلان زا گرفته خب بیسا فلان زا میگن مصیج دیگه ها ولی ما باقی اصلا نمیگیرن چه باسا همه چیز همینطوره بیماری سل تمام امراض موسی. ببینی از انسان هایی که سیستم ایمیون سیستم ایمینولوژی بدنشون نابود شده به واسطه از دست دادن ایمان اینا هر بیماری که از دروبرنشه اینا میگیرن چرا برای اینکه اینها کافر شدن یعنی ایمنی بدنشون از دست رفته یعنی بدنشون صاحب نداره صاحب وجود کیه؟ خداست مومن کسی که خداوند در قلبش نظر داره و در قلبش حضور داره لذا او را حفظ میکنه امراض اوتو میون یعنی امراضی هستن که یک انسان دوچار وضعیتی که کل وجودش دشمن خودشه ولی خداوند دوست انسان ببینید در واقع یک انسانی که در وضعیت اوتو امیون قرار میگره یعنی وجودش تسخیر اجنه و شیاطین و شیاطین قرآن میگه کیان هم دشمان قسم خورده انسان هستند. همونها در واقع بشه گفت بیماری ها را به وجود فرد میکشونند خود اجنه و شیاطین وجودی که خدا داره ها هیچ ویروسی برش وارد نمیشه و او سالمه برانکه صاحبه وجود یعنی خداوند دوست انسانه ببین ما امروزه می‌بینیم که پزشکی جدید و کللا دانش و تمدن مدرن مخصوصاً در ق علم داشت و درمان داره چنین باور کافرانه و احمقان رو ایجاد کرده که اصلا انسان رو علت بیماری ها رو خودش نمیدونه بیماری ها رو حاصل بد و شرایط میدونه خب یک نگاه کامدان کافرانه است اما انسانی که بیمار شده به عذاب افتاده در واقع او تخصیل نداره، بیوناهه یه ویروسی از سر شانسی اومده بر بدنش رخ نکرده و او رو در تمام امروز به زج رو عذاب انداخته و نابود کرده این فکر کافرانه است؟ این فکر ممکنه خداست ممکنه وجود قانون عدالت الهی در جهانه ببین باز ذاتش این فکری که امروز بر فیزرشکی و تمدن جایی تاکنه ذاتش است. زیرا انسان رو مسئول اعمال خودش نمیدونه انسان رو عامل ثرده بشه خودش نمیدونه ببینید خداوند در قرآن میفرماد اگر در آن خوش بگویید که تقصیر انسان نشه شما ما پدرمادر ما بودن فرزندان ما بودن مردمان بودن حکومت بود شرایط و زمانه بود و شما نمیپذیرین برای به دروغ میگید و میدونید که دروغ گفتید تمام بدبختیای بس از شما اومدهش ما خودتون به سر خودتون آوردید هیچ کسی به شما ظلم نکرده باشه شما خودتون فقط به خودتون ظلم میکنید. این کلام خداست و ما اگر مسلمانی مومنیم این چنین فرهنگی که بر پزشکی آکمه در واقع داره وجدان و دین رو از مردم میگیره و در واقع ایمنی یعنی سیستم ایمنی مدن رو از لازه فرهنگی این دانش پزشکی داره نابود میکنه و همه رو تبدیل به بیماران اوترومیون میکنه تا بتونه در چرخه سنت و تجارت آدم خوری وارد کنه و همچون کالایی از وجود انسان ها استفاده کنه. هم پولشون رو بگیره، هم جونشون رو بگیره و یک عمرون ها رو در عذاب بکشه. در واقع باست گفتش که موزه پدشکی یکی از دربه های دوزخه که کافران بران وارد میشن. ما میبینیم، طرف تا زمانی که یک بیماری داره که هنوز به پدشک و بیمارستان رو نکرده، یک بیماری داره که همون بیش. به مرزی که وارد رو بر اونجا، ما تازه میکنیم که بیماری تا اونجا. بخش از عذاب هایی در قران اومده ما امروز این عذاب ها در جان پی کی میبینیم که داره عمل میکنه ببینید قران میگه در دوزخ این در قلمرو عذاب ها اهل دوزخ قزاهاشون چرک و خون و سموم و سقره. هستند بخش عظیمی از این دارو ها چرک و خون و سموم و سقر نیستن بخش از دارو ها مگه موهکترین سم ها نیستن کورتون ها شیمی درمانی ها اینا چیه مگه کشنده ترین سمومی که ترجح میشه رو بدن انسانو ببینید؟ چرک و خون آه؟ این قضای عهد دوزخ آتش یکی از این عذاب النار آتش دوزخه که تا مغد استخوان می سو چیه؟ همین تشعهات رادیو اکتیو اشعه اکس آه؟ امروز مواد رادیو اکتیو به دارو داره استفاده می شه. این اشعه ها به عنوان درمان داره بکار کار میره اینها آتش های دوزخ که تا اعماق سلول ها و استخان رسوخ می کنن. و فرز رو نابود میکنن در حالی درمان دارن به زج و زج میدازن و خانه بیمار کشته میشه ولی با عذاب این بیماری که مثلا اگر سراتان گرفته اگر سبر پیش میکرد تعمل پیش میکرد به اعمال خود نگاه میکرد توب میکرد چه بسا بیره بود پیدا میکرد شفا میابد لاغل اینکه اون سراتان او رو به این زج و زجه صد بار نمیکشد خب بنا ما واسه بدونیم که یکی از بزرگترین عوامل پیدایش این همه بیماری‌های اتو ایمیون و بی علاج خود دانش و فرهنگ و سنت پزشکی است که چنین فکر را داره با شایعت الغاء می‌کنه این فکر خودش منشأ ترین و ترین امراض است در واقع پزشکی و دانش پزشکی یکی از علوم دوزخی است طبق قرآن از جمعه علوم بقیه هست یعنی علوم ستمگر حلیس و تجابسکار جز علوم کافرانه است و پیروانش رو هم بر جهنم وارد میکنه و به انوای این عذاب ها مقتلا میکنه در حقیقت به یک کلام بایستی گفت که درمانی جز دین بیرون نداره بیم درمانی حقیقی ترین و مسلم ترین درمان دین است پس فقط با معرفت بر بیماری های خودمون و شناخت گناهان و خطاهای خودمون و اصلاح اعمال خودمون که ما میتونیم درمان بشیم و درمانی جز این هم ممکن نیست و ما شاهدیم که هر کسی که به دام این پدشکی جدید میفته دقیقا مثل اینه که بر دوزه وارث شده و کسی اینه که بر این دوزه وارث شد دیگه راه خروج نداره و معیوسه از خدا و رحمت الهی میشه و تسلیم این خازنان دوزخ میشه یعنی تسلیم این پدشکان میشه تا هر کاری که میخوان باش بفنند و این عذاب گناهانی یکی کرده و عذاب توبه یکی نکرده زیرا خداوند میفرماد هر که بیماری عذابی فرود میاد من بر کسی میگم که این از چه بابت بود یعنی وجدانش باخبر میشه که از چه بابته پس اون میتونه که توبه کنه ولی توبه نمی کنه. خیلی از بیماری ها در واقع خداوند به انسان میده تا انسان متوجه خطاهای خودش بشه، بزدانیش بیدار بشه تا توبه کنه. چون توبه نمی‌کنه، اون بیماری‌ها او را به عذاب می‌کشه و به دام پزشکی‌ها می‌اندازه. بنابراین استاد نتیجه‌گیری واسه بگیم که هر بیماری، هر گرفتاری، هر عذاب عاطفی، فکری که در انسان پیدا میشه، در مرحله اول این یک اختاره یک لطف الهی یک زنگ خطره تا انسان به خودش بیاد و انسان به خودش هم می راد و که داره خطا میره. در واقع در مهل اول همه این ها از طرف خدا امر دعوته به توبه است حضی الاز باید کفتش که این بیماری ها از در مهل اول به مسابه وحی تن هستند. این دعوت وحی الهی در تن انسان هستند. تا انسان به خودش بیاد و توبه کنه و خداوند مولتی میده بیماری در یک مرحله اولیه در یک کمون مقدماتی واقعا هیچ آزار عذابی نداره فقط داره به انسان اختار میده این مولت که تموم شد انسان توبه نکرد آنگاه تبدیل به عذاب میشه که یکی از به شاشون اینه که به دام نظام پیزشکی در میاد و در اونجا در واقع سلاخی میشه جانش، روحش، وجدانش، وطنش در اونجا به عذاب میفته و در حالت یعص و نابودی از دنیا میره. بنابراین واضح شد که بیماری در صورت اول شکل بلاست به مفهوم بلی خداوند تو روی کرد خداوند با انسان در محل دوم اگر انسان توبه نکرد در مسابقه قذب الهی است. که این قذب الهی هم در واقع در مفهوم نهایی به معنای لطن خداست که خداوند میخواد پاک کنه عذاب دوزخ پاک کننده سیاهی ها و کفر ها و تبائی های اعمال انسانه ولی بسیار خوب است که انسان به واسطه معرفت و تسکین نفس و تقوا رو پاک کنه اگر نکرد به واسطه عذابه که انسان پاک میشه ولی وای بر کسانی که خداوند حتی در این دنیا هم اونها رو عذاب نمیکنه و این بیماری ها رو به اینها نمیده ها یعنی خدا افصالشون سرشون انداخته و اینا رو لعنت کرده در حقیقت تا در این دو زندگی غرق در عیاشی حیوانی باشند بعد از مرگ و آن عذاب عظیم الهی تا اینها مبتلا هستند بنابراین باستی انواع بیماری ها و سلامتی ها را هم از این دیدگاه درک کنیم تا بتوانیم در باره شناخت خودمون شناخت دین و شناخت خداوند به خطا داریم وست